از او هرچند در خورد باخرد، دگر برخ رمز معنا برد. پس دید میتواند نماد و جلوی از بدترین و بدنهادترین مردمان باشد که گرچه گاه از پهلوانان و شاهان به دانش و زور و قدرت برتری دارد اما نهادی پست و خوئی متجاوز و اندیشههایی اهریمنی و تبحکارانه دارد. و گیر که در این روایت از سرزمین مازندران سخن می‌رود سرزمینی به سان بهشت جایگاه و کشور دیوان و اهریمنان است و کیکاووس پادشاه ایران به دنجال لشکر می‌کشد باید یادآوری شود این مازندران مازندران کنونی ایران نبوده است نام سرزمینی بسیار دور از پارس پای تخت ایران آن روزگار بوده است. شاید بسی دورتر از سرزمین های ماورای جیهون، شاید سرزمین در دور دست هندوستان و شاید در دور دسترین مرز های باختری پادشاهی ایران آن روز، ما بین آخرین سرزمین آسیایی و کشورهای آفریقایی. آنکه قابل یادآوری است آنکه در بسیاری از آثار کلاسیک و حماسی جهان زمان و مکان دست خوش نوسانات و جابجایی‌های گوناگون می شود پادشاهی 50 سال و پادشاهی 700 سال پادشاهی می‌کنند کوه ها و دریاها از قاره به قاره دیگر برده شدند و سرزمین های گوناگونی گاه یک نام به خود گرفته و سرزمین یگانه گاه به نام‌های گوناگون نامیده شده است. برخال پاره‌ای از محققین مازندران شاهنامه را همین سرزمین کنونی هند دانسته و پاره دیگر آن را بخشی از سرزمین‌های آفریقایی دانستند. هموطن شما سعید قائم مقامی در هشت روایت پیشین از هشت پادشاه پیشدادی ایران سخند راندید از کیومرس بزرگ تازو تحماس در روزگار پادشاهی این هشت پادشاه ایران و ایرانیان پرازون در های بسیاری را پشت سر گذاشتند از این هشت پادشاه همچنین باید از زه که خونخار نام ببریم که پس از جمشید هزار سال بر ایران پادشاهی کرد و همینگونه نیز از افراسیاب تورانی که پس از کشتن نوزر زمانی کوتاه در شهر ری تاج پادشاهی ایران را بر سر گذاشت در هشت روایت پیشین برایتان روایت کردم آخرین پادشاه از این هشت پادشاه پیشدادی زهوت تحماس بود که با مرگش و تخت پادشاهی ایران به بازماندهی از تبار بزرگان ایران کیقوباد رسید کیقوباد نهمین پادشاه ایران و نخستین پادشاه از پادشاهان کیانی بود پادشاهی دلی و داد گستر که به دنبال جنگهای خونینی افراسیاب تورانی را شکست داد و تورانیان را به آن سوی رودخانی مرزی جیهون را هشنگ پدر افراسیاب و فرمانروای تورانیان پس از این شکست از کیقوباد بخشش و آشتی درخواست کرد و کیقوباد با بزرگباری با تورانیان از در صلح و آشتی در آمده با آنان پیمان سلخ و دوستی هست برای روایت کردم این همه پیروزی به پای ایرانیان و دلیری سرداران و دلاوران بزرگ ایران چون قارن و قباد و زال به دست آمد تا آنجا که تنی چند از آنان چون قباد پیر و چون شاهپور نستو خونشان در این راه بر دشتهای ایران زمین ریخته شد اسوی دیگر در همین ایام بود که رستم جوان با رخش تازه نفس خود به جه پهلوانان ایران پیوست و دلاوری خواه و قهرمانی های او خود یکی از اسباب و ابزار اساسی این پیروزی بزرگ بود برایتان روایت کردم که کیقاد یکصد سال زیست. و ایران بار دیگر در دوران پادشاهی او سرزمینی آباد و نیرومند شد و خداوند به او چهار پسر داد که بزرگترین آنها کیکاووس بود که با مرگ پدر بر تخت پادشاهی ایران تکیه زد شنیدیم که پدر در بستر مرگ کیکاووس را فراوان پند و اندرز داد و او را به نیکی و دادگستری و میهندوستی سپارش کرد و از کجی و کجرفتاری و آزمندی داشت پردوسی بزرگ در شاهنامی خود در آغاز روایت دوران 120 سالی پادشاهی کیکاووز پدر را همچون درخت تناور و کنسالی میداند که چون پیری و سال خردگی به ساق و شاخ و برگش آسیب میرساند و درخت فرسوده می گردد، جای خود را به ساقی کوچک تازه می میدهد که از این ترین تنه درخت و از ریشه های خاک قد برمیکشد درخت کن سال میخشکد و میپوسد و ساقه جوان میبالد و جای او را در باغ و بوستان زندگی میگیرد درخت بر اومند چون شد بلند گرید اون بر او برو برگزند شبت برگ پشمرده و بیخ سست سرش سوی پستی گراید درست. چون از جایه بکسلد پای خیش به شاخ نعاین دهد جای خیش مرو را سپارد گل و برگ و باغ بهاری به کردار ربشن چراق آنگاه میگوید اگر از بی آن درخت کونسال ساقی بد و ناسازگار ببالد و بزرگ شود نباید بیخوریش را سرزنش کرد پسر آن ساقی بالنده و جوان اگر رود و کجندی اندیشد رسم و راه پدر را نادیده گیرد برای پدر بیگانه است تا پسر و از روزگار بد خواهد بید تجربه چنین گفته است رسم روزگار کوهن چنین است آن کس که در جستجوی بدی هاگ زندگی است زندگی با او سر سازش و سازگاری نخواهد داشت اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک تو با بیخ تندی میاقاز هازیک پدر چون به ماند جهان کنَد آشکارا او بر نهان یارو بفتنَد پر و نام پدر تو بیگانه خانش مخانش بسن یارو گم کند راه آموزگار سزد گر جفا بیند از روز کار چنین است رسم سرای کن سرش هیچ پیدا نبینی بود چو رسم بدش باز یابد کسی نخواهد که مالت بدود رسید کاهوس جای پدرش کیقوباد را گرفت همه چیز برای او فراهم بود جهانی چون بندگان به پیشش ایستاده گنج ها لپریز و تاج پادشاهی ایران بر سر و تخت پادشاهی ایران در زیر او برای خود حمال و همتا و نظیری در جهان نمیدید چو کاهوس بگرفت گاه پدر مرور را جهان بنده شد سر به سر زهرگونه گنج آگنده دید جهان سر به سر پیش خود بنده دید همان تخت و هم توق و هم گوشوار همان تاج زرین زبرجت نگار همان تازی اسبان آگنده یال بگیتی ندانست خود را همان آری همه چیز فراهم است همه شرایط برای کجروی و قرور و خودپسندی که کاهوس فراهم است تنها انسان های برتر و مردان کامل هستند که از دام قرور ناشی از قدرت جان سالم به در میبرند آیا که کاووس یکی از آنان بود فردوسی چنین روایت می کند روزی که کاووس با بزرگان ایران در باقع یکی از کاخهای پادشاهی سرگرم گفتگو و بادکساری بود که پردهدار او به وی آگاهی داد که آواز خانون نوازنده ای دور گرد و خوشصدا اجازه می در این مجلس بسم و شادی برای شاه و پهلوانان و سرداران ایران آواز بخواند. کابوس میپذیرد و آواز خان که دیرزاده احریمن صفت بود به مجلس پادشاه در و به زبان و نوای مازندرانی آواز سر میخد و فراوان از خویحای سرزنین دور مازندران به گوش پادشاه می‌خورد. مازندران شاه را یاد باد همیشه بر بومش آباد باد در بوستانش همیشه گل است به کوهندرش لاله و سنبول است هوا خوشگوار و زمین پرنگار به گرم و به سردش همیشه بها ها عوازنده بلبل به باق اندرون گرازنده آهو به راق اندرون گلاب است توی به جویش روان همیشه آد گردد زبویش روان دی و بهمن و آزر و فرودین همیشه پر از لالبینی زمین همه سال خندان لب جویبار همه سال باز شکاری به کار سراسر همه آراسته راسته زیباب زی و دینا رو از خواسته آری آوازخان دیوزاده چنان از زیبایی ها و خوبی ها و سروت های سرزمین دوردست ماسندران که جایگاه دیوان و جادوگران بود سخن میگوید گوید یکی کاووس بران می شود که با سپاخیان و سردارانش برای به دست آوردن آن سرزمین به جنگ دیوان رود پهلوانان و سرداران و بزرگانی که در آن میهمانی حضور دارند میگوید ما اینک اکثر اوقات خود را به بعض میگذرانیم و از میدان رزم دور و بیخبریم و این سبب تنبلی و سستی ما و خیر سری و توانایی دشمنان ما می شود حکابوز که, که در حقیقت آزمندانه در پی افزودن سرزمین زیبای تازه‌ای به قلم روی پادشاهی خیشدن است به حاضرین میگوید من از همه پادشاهان گذشته ایران برتری و فزونی دارم پس باید در جهانجویی و کشور گوشایی نیز از آنان پیشی گیرم چونین گفت با سرفرازان رزم ما سرنهادیم یک سر بعد چو بر کاهلی پیشگیرد گیرد دلیل بگردد برو دشمن پس چی؟ من از جم و زحاک و از کیقوبات فزونم به بخت و فزونم به داد فزون بایدم زانه ایشان هنر جهانجوی باید سر تاج ور پهلوانان و سرداران ایران چون از اندیشه و قصد پادشاه برای لشگرکشی به مازندران آگاه شدند ترس بر جانشان علبه کرد و زرد روی در هم شد آنها میدانستند که جنگ با دیوان مازندران بس خطرناک و آور است اما هیچ کدام جرعت مخالفت با کیکاوس را در خود نیافتند پس ناگذیر به او گفتند که آماده فرمانبری هستند سخون چون به گوش بزرگان رسید از ایشان کسان رای فرخ ندید همه زرد گشتند و پرچینگ به روی کسی جنگ دیوان نکرد آرزود کسی راست پاسخ نیارست که نهانی بودیشان غم و باد سرد چو توس و چو گودرز کشباد و گی. چو خراد و گرگین و بهرام نی. با آواز گفتند ما که داریم، زمین جز به فرمان تو نس بریم و سرداران ایران در پایان آن مجلس میهمانی و پس از آگاهی از اندیشه پادشاه شتاب زده گرده هم جمع شدند و در باری تصمیم پادشاه به گفتگونش نشستند یکی از آنان گفت اگر پادشاه از سر مستی این سخن نگفته باشد و راستی خیال جنگیدن با شاه مازندران را داشته باشد روزگار ما و ایران تیرگی خواهد گرفت چه نجمشید با آن همه عظمت و نفریدون با آن همه دانش و افزون هیچ کدام هرگز به فکر جنگ با دیوان مازندران نیفتادن بازان پس یکی انجمن ساخته ز گفتار او دل بپرداختند نشستند و گفتند یک با دیگر. از بخت ما را چه آمد به سر؟ اگر شهریار این ها که گو به می در نخواهد نهفت ز ما و ز ایران برآمد آمد نماند بر این گوم و بر آب و خاک کهجمشید با تاج و انگشتری به فرمان او مرغ و دیو و پری زه مازندران یاد هرگز نکرد نجست از دلیران دیوان نبد فریدون پر دانش پرپسون همین روانش نبود نمون اگر شایدی بردن این بت به سر به مردی و گنج و به نام و هنر بدی چارگر جان هرکس بدین که این بت بد بگشتی زایران سبی افزاد توس پسر نظر شاه که این نک خود یکی از پهلوانان بزرگ ایران است و دیگر گل آوران میگوید چار آن است که به شتاب به سالال بزرگ پیام بدهیم که اگر گله سرشور برخثر دارد از شستن آن به آب دست بکشد و با شتاب خود را به پارس برساند تا شاید پادشاه را از حمله به ماسندران باز دارد. ای رزم دیگه دلاور سلام من این بند را چار اکنون است بسازیم و این رنج دشوار نیست ایونی تقاورت بر زال سام بباید فرستاد و دادن پیام که گر سر به گل داری اکنون مجموع. یکی تیز کن مغزو به مای روی مگر کو گشاید یکی پند من سخن بر دل شخیاغ بلند. بگوید که این احرمان یاد داد در دیب هرگز نباید گشاد مگر زالش آرد از این گفت باز نگر نه سر آمد نشیب و فراز استادی شب و روز یک نفس میتازه انجام به کاخ زال میرسد و پیام دلاوران و سرداران ایران را به میدهند. یکی کار پیش آمد که نون شگفت که از دانش اندازه نهتوان گرفت. بدین کار اگر تو نبندی کمر نه تن ماندی در نبوم و نبر. یکی شاه را بر دلنیشه خواست بپیچیده شهری من از راه راست. رنج نیاگانش از باستان نخواهد همی بود همداستان همی گنج بیرنج بگزایدش چراگاه مازندران بایدش اگر هیچ سرخاری از آمدن سپهبت همی زود خواهد شدن همه رنج تو داد خواهد به باد که بردی به آغاز با کیق و باد تو با رستم شیر ناخورد سیر میان را ببستی بستی چو شیر کنون آن همه باد شد پیش اوی بپیچید جان بدندی شود دلزال با شنیدن پیام سرداران ایران به درد نهایت. او که کاووس را شناخته است پادشاهی خود کامه و مستبد که گرچه سردی و گرمی روزگار نچشیده از سر قرور تن به نصیحت دلاور با ای چون او نخواهد داد. پس چه کند؟ ایران و پادشاه ایران را به حال خود بگذارد؟ اگر چنین کند خداوند ایران و سرانجام پادشاه ایران از او رنجید خاطر خواهند شد پس باید فرمان روای زابلستان را به تمتن رستم جوان بزبارد و راهی پاس شود کابوس خود کام مرد زگیتی نگرماز موده نسخت نباشد شگفتر به من نگرود شبم خسته گرپند من نشدم بر این رنج آسان کنم بردلم از اندیشه شاه دل بکسلم از من جهان آفریم نه شاخ و نه ایران زمین شبم کوگمش هرچه دانم زپند زمن گر پذیرد بود سود مند وگر تیز گردد گشاده هست زاخ همتن همیدر بود با پا و به سان زال به سوی پای تخت شاخن ایران براق می افتاد. بزرگان ایران با شنیدن خبر آمدن زال به استقبال او میروند و پس از سپاس گزاری فراوان از او به همراهش به کاخ پادشاهی و به نزد کیکاووز میروند همه یک سر نزد شاه آمدند بر نامور تاج و گاه آمدند همی رفت پیشن در زال زر پس او بزرگان زرین کمر چو کاووس را دید دستان سام نشسته به او رنگ برشات کام چون این گفت <تصحنت> ای کت خدای جهان سرف راز مهتران و مهان، چو تو تخت نشنید و افسر ندید و چون بخت تو چرخ گردان کرد. همه سال پیروز بادی و شا دلت پرزدانش سرت داد پرزدان. شه نامبردا بردا باختش، برخیش بر تخت بنشاختش بپرسیدش از رنج و راه دراز گردان و از رستم سرفراز چون این گفت مرشاخ را زالزم انون شهر به زید شاد و پیروز گرد همه شاد و روشن به بخت بر سر به تخت شد به گرمی زال را پذیر می شود و زال نیز او را ستایش می کند و آنگاه در پند و نصیحت را می گشاید. به او میگوید من بسیار عمر کردم پادشاهی منوچه را دیدم روزگار نوزر را استم پادشاهانی چنزو و و کیخباد و بسیاری بزرگان دیگر را به یاد دارم و میدانم که هیچ کدام از آنان هرگز آهنگ جنگ مازندران نکرد تا آنجا سرزمین دیوان افسونگر است نبا نیرنگ نبا شمشیر نبا گنج و نبا دانش نمی‌توان بر آنان پیروز شد روزو عمر و درم و خود را بیهوده از دست مده هیچکس رفتن به مازندران را همایون و خوشیون نمیداند همی سرداران و سپاهیان تو کهتر و کوچک و خدمتگزار تو هستند از سوی دیگر آنها نیز چون تو بنده خداوند به شمار می و تو نباید با خون آنها درخت فزنخواهی و آزمندی خود را سیراب کنی چون درختی چنین بار و میبش نفرین خواهد بود ای پادشاه جهان سر افراز تختی و گاه مهان بر سر مراه روز چندی گذشت سپهر از بر خاک تیره بگرشت منوچه شد زین جهان فراخت و از او ماند ای در بسی گنج و کاخ همان زو عبا نوزر و کیق باد چه ماه بزرگان که دارین یاد ابا لشگر گشن و گنداوران نکردند آهنگ ما سنتران چه آن خانه دی و عفصونگر است تلسم هست و بند است و جاوی را به نیرنگ نتوان گشاد، مده روز و رنج و درم را بباد همان را به شمشیر نتوان شکست به گنج و به دانش نیاید بدست ندارد کسان جا شدن وزی در کنون را گرفتن زدن سپخ را به دانسون نباید کشید ز شاهان کسی رای هرگز ندید گر این نامداران تو را که ترند تو بنده دادگر داورند تو از خونه چندین سر نامدار ز بحر فزونی درختی مکار که بار و بلندیش نفرین بود نه آیین شاهان پیشین بود و درد که پند و اندرز زال در اندیشه و خواست آزمندانه که کاهوز اثری نمی برشد. در تاریخ جهان و بویژه در صفحات تاریخ میهن ما جا به جا از انگشت ندامت به گزیدن ها سخن رفته است آنگاه که پادشاهان و فرمان خود خودکامه می به چین درخت خودکامه یه خیشتن شدند انگاه که ملتها را به پریشانی و انهتاد و کشورها را به ویرانی و عقب مندگی و دست نشاندگی کشانده. که کاووس به زال میگوید از پند تو بینیاز نیستم اما بدان که من از فریدون و جمشید و منوچهر و کیقباد برترم سپاه و گنجم فزونتر است و جهان زیر شمشیر آهنین من است چرا آن را نگوشایم؟ از اندیشه تو نیم بینی ولی که این فریدون و جن است مردی و فر و درم همان از من اون چهر و, و از که ما را نکردند یاد سپاه و دل و گنج افزون تر است جهان زیر شمشیر تیزندر است چو برداشتی؟ شد گشاد جهان به آهن چه داریم گیتینهان؟ شبمشان یکا یک براهاورم گرایین شمشیر و گاهاورم اگر کس نمانم به مازندران وگر برن هم ساب و باج گران چنان زار و خوارند بر چشم من چه جادو چه مردان آن انجامند به گوش تو آیت خود این آیهی کدیشان شبد روی گیتی توهی تو با رستمی در جهاندار باش نگهبان ایران و بیدار باش جهان آفریننده یار من است سر نر دیوان شکار من است گرید اون که یارم نباشی به جنگ مفرمای ما را بدیم در درنگ زال در پاسخ سخنان بی پایه و اساس که کابوس به میگوید من اثر دل سوزی با تو سخن گفتم. اگر نه تو پادشاه و پیروی از تو چه با داد و چه باستم هم همراه باشد ناگزیر است. اما بدان که جهانجو جویان نظمت و نسل نیازمندی و فسون در امان نیستند و نمی توانند چشم جهان را که کردار و رفتار آنها را خواهد دید با سوزن بدوزند. به هر گونه آرزو دارم گذر زمان بر تو فرخنده باشد و هرگز زمانی پیش نیاید که پند مرا به یاد آوری و از کرده خود پشیمان شدید از شاه بشنید زالین سخن ندیدیچ پیدا سرش رازه بند بدو گفت شاهی و ما بنده ای به دلسوزگی با تو گوینده اگر دادگویی گویی همی یا ستم به تو باید زدن گام و دم از اندیشه من دل نپرداختم. سخون هرچه بایست انداختم نه مریستن خیش به پنس و نه چشم جهان کسب به سوزن به به پرهیز هم کس نرست از نیاز جهانجوی از این سن نیامد جواز روشن جهان بر تو فرخنده باد مبادا که پند منایت یافت. پشیمان مبادی ز کردام رخیش به تو باد رکن دل و دین و سبک شاه زال پدروت کرد دل از رفتن شاه هردود کرد برون آمد از پیش کاووس شاه شده تیره بر چشم او خود و ما برفتند با او بزرگان نیز چو توس و چو گودرز و بهرام و جیف. زال خاش این به شتاب از کاخ کی کاووس بیرون یاید دلاوران ایران نیز که همراه او هستند از رفتار کی کاووس سخت آزردند گیر دلاور نیو و جوان پسر بزرگ گودرز پیر خاش گنانه میگوید ای کاش خداوند کاووس را به جایی بفرستد که به هیچ کس دست نداشته باشد و هیچ کس او را کسی نشمارد بانگاه از زال که رنج راه را به خود هموار کرد و به پاس آمد سپاس گزاره و به او میگوید ایران به او چشم امید دوخته است پهلوانان ایران رنزال پیر را با مهر و احترام بدرقه می کنند و زال به راه سیستان گام می گذارد به زالانگهی گیف گفت از خدای همی همان کوب و بدره به جایی که کابوس را دست راست نباشد نداخی او را بکست ستا دور باداست و مرگ و نیاز مبادا به تو دست دشمندرانست و هر سو که آیم و بیم و ربین جز از آفرینت سخن نشنمی و از کردگار جهان آفرین به تو دارد امید ایران زمین به بحر جوان رنج براشتی چون این راه به دشخار بگذاشتی سرا سر گرفتندشن در کنار راه سیستان راه برا راست کار هنوز زال از پای تخت از پارس نرفته است که کیکاووس مقرور به توس فرمانده سپاه ایران و گودرز پیر پهلوان ایرانی فرمان لشگرگشی می دهد کیکاووس خطاکاری را آغاز می کنه جزال سپه و زپخلف برفت دم آدم سپه رو بنها کرد به تونس و به گودرس فرمود شاه تشیدن بنه سرنهادن به راه مردای رفتن از آل سپاهیان ایران به حرکت درمی که تکاووس ایران زمین و کلید در ها و تخت و تاج ایران را به میلاد دلاور دیگر ایران سپرده به او میگوید اگر در نبودش دشمنان به ایران زمین تاختند افزال و پسر جوانش رستم یاری بخواهد دو شب روز شد شاه و جنگ نهادند سرسوی مازندران به میلاد بسپورت ایران زمین کلید در گنج و گاه نگین به دو گفت اگر دشمنا یک فلید تو راکیق کینه بباید کشید زهرمد به و به پناه که پشت سپاه هم دو زیبای گاه حرکت کنن سپاه یان ایران به دشتهای بیرون شهر مازندران رسیدن کران تا کران دشت خیمه و خرگاه سپاکیان ایران برتاست. رخست این شب به باد خاری و برد گذشته است و سهرگاه خونینی آغاز شده است آدشاه به گیو دلاور فرمان می دو هزار سپاهی مردفگن و گرزگیر انتخاب کرده به نخستین این شهر از شهرهای مازندران حمله برد. شهر را بسوزد، بیران کند، تنها را بی سازد و روز را برای مازندرانیان شب سازد و تا دیوان خبر شوند جهان را از جادو توهید ساختند. همه شب، می و مجلس ها راستند. به شب بیر خواب برخواستند، نزدیک شاه آمدند. حمار بسته و با کلاه آمدند بفرمود پسگیر را شهریار دوباره گزیدن ز لشکر هزار کسی کو به گرز گران و شهر مازندران الان کس که بینی ز پیر و جوان فنی کن که او را نباشد روان و او حرت آباد بینی بسوز شباور بر هر جا که باشی به روز تنین خواب به دیوان رسد آیهی جهان کن ز جادو تویی کمر بست دست رفت در شاه گیر زلشگر گزین کرد گردان می بشد تا در شهر مازندران به بباری چمشیر و گرز گران زن و کودک و مرد با دست وار نیافستر تیوزی ها همی سو قارد همی که چه بیالو بر جاگ تر این سن شهر و زیبا و ثروتمندی از شهرهای مازندران در آتش که کیکاوز به خاک و خون کشیده بارد خبر حملی سپاهیان ایران به قلب مازندران و به پایتخت پادشاه مازندران میرسد او پادشاه دیوان و جادوان است پس به سنجه دیوی از میان خدمتگزارانش دستور میدهد به شتاب به جاگاه دیو سفید رفته از هجوم ایرانیان او را آگاه کند تو یک هفته بگذشت ایرانیان ز قارت گشادند یک سرنیان خبر شد بر شاه مازندران دلش پر درد و سر سرشدگران ز دیوان به پیشندران سنجه بود که جان و تنش زان سخن رنجه بود بدو گفت رون از دیو سپی چنان رو که بر چرخ گردندشی به گویش آمد به مازندران به قارت از ایران سپاهی گران جهانجوی کاؤوسشان پیش رو یکی لشکری جنگ سازان نو کنونگر نباشید تو فریاد رس نبینی به مازنده را نیز کرد بشنید پیغام سنجه برفت و با نامه شاه و پیغام تفت که آمد به نسلیکان سرپراز بگفتن که بشنید از آن راز ساز چون این حاسوخ نیب سپید از زگاران مشون آمید بیان کن با سپاهی گران به بران پیو ز مازن دران نیب سپید برای انتقام چون برق بلا از آغی رسان شب هنگام است سپاخ ایران توده ابر سیاهی را بر آسمان میبیند که جهان را چون دریای قار دریای سیاه از نور و روشنایی توهی کند تیرگی یاد فریادهای درد و تخص و سر انجام مرگ و حلاک از راه رسیده است دو بحر دو قسمت از سپاهیان ایران چشمانشان تیرگی گرفته است. که کابوس خود نابینا شده است و برایش روز و شب تفاوتی ندارد از ایرانیان پروان تبه و کشته شدند و همه چیز از دست رفته است شب آمد یکی ابر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگیزیا که دریای طاق است در جهان همه روشناییش گشت نهان یکی خیمه زد بر سر از دود و آتش سیاه شد جهان چاش تا خیرکی چون شب روز نزدیک شد جهانجود را چشم تاریخ شد زلشگر دو بهره شده تیر چشم سر نامداران شده پرس خشم چشم کیکاهوز تیر دیگه و با دفره بدیهایش گریبانگیر سپاهیانش نیز شده است پیروزی آسان به دست آمده به شکست نامید ای خاتم یافته است بر دوسیه بزرگ میگوید خیرهسران خیرسران خود از خیرسری و رفتار شگفتانگیزشان گاه سخت شگفت زده می شوند. آن هنگام که بادی که کاشتن طوفان به بار آورده است و که شگفت زده با خود میگوید. مشاور و دستور و وزیر آگاه بسی بهتر از گنج های آگنده است چو تاریک شد چشم کاووس شاه بد آمد ذکردار و بر ها همه گنج تاراج و لشگر اسیر جوان دولت و تیز برگشت پیر همان داستان یاد باید گرفت که خیره بماند شگفت از شگفت داوران که پس از یک هفته درد و رنج دیو سفید به دیدار کیکاووس رفته او را سخت سرزنش و تحقیر می کند. به او میگوید تو که همچون درخت بید بدون میوه و سمر هستی تو که کوی و برزنی را در زندگیت نساختی و نیاراستی چگونه به خود اجازه دادی چراگاه های سرسبز مازندران را از آن خود کنید پیل هم که مست شود توانا از پای در آوردن موری نیست به سختی چه کمدم در کشید به دیدار از ایرانیان کست ندید به هشتم بقرید دیو سپید ای شاه بر چه بیگ بید همی برزنی را نیار چراگاه چرا گاه Ná mi nírui دیو سفید دوازده هزار نر دیو خنجرگزار را به پاسداری پادشاه ایران و سرای ایرانی می غذای قضای از ایران سبوس است که فقط به بوس و سختی روزی زنده بماند. دیو سفید هرانچ گنج و گوهر از ایشان گرفته بود به دیو دیگری ارزنگ می سپارد. که به نزد شاه مازندران برد و به او بگوید از شیطان و احریمنگل گلمند مباش پادشاه ایران را در اثارت زرج پشخواهم کرد از آن نر دیوان خنجرگزار گزین کرد جنگی ده و دو هزار به ایرانیان بر نگهدار کرد سر سرکشان پرز تیمار کرد خورش دادشان لختکی از سبوس. بدان تا گزارند روزی به بوکس وزان پس همه گنج شاه و سپاه چه از تاج یاقوت و پیروزگاه دان که دید از کران تا کران برزنگ سالار مازندران بر شاه او را بگوی که زخمه مکرن من به حاله بچه شاه و دلیگانی سپاه نخورشی دینن روچن به کشتن مکردم برو برنیب به دان بدانت فراز از بشیم به سختی برای اکش اوچ کسی نیز نمهد به دین کار بشنید گفتار اوی به مازندران شاخ بنهاد همی رفت با لشگر رو خواسته از و اسبان از ایران و اسمان آراسته کابوس که با دفره و پاداش خیر سریع خود را تجمع می کند. در بند و زندان به سفید کور و دل شکست آخرین امید را در وجود زال و رستم میبیند پس پیکی به نزد زال فرستاده که به او بگوید بر من چه آمد زفخت به گردن آمد سر تاج تخت در گنج و آن نامدار بیاراسته چون گلن در بخار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که با در حرامت بفن چشم شد تیره و خیره وقت نگوم سال گشته سر تاچ و تخت چون این خسته در دست احمی منم همی بگ زار جان است. چون از پند های تو یاد آورم همین از جگر سر باد آورم نرفتم به گفت آره تو خوش من کم میخرد بد من آمد گذن اگر تو نبدی بدین بد میان همه سود را مایه باشد یافت پیام که کابوس خش به سر جوان خیش تهمتن رستم را فرا و به او گفت شاه ایران در اصارت دیوان به سر کرده یه دیو سپید است ما نمی توانیم بچنیم و بچریم بگردیم و بخوریم و تنها نگهدار تاج و تخت خودمان باشیم بدان که خداوند را برای چنین روز روزهایی برای ایران پرورده است پس رخش را زین کن و چرم ببر بر تن پوش و برا گفت <تصفيق> <تصفيق> نشاید که زین پس چمی بچرین وگر خیشتن تاج را پرورین که شاه جهان در اشته هاست بر ایرانیان بر چمای بلاست همین رخش را کرد باید زین بخوافی به تیغ جهان بخش کین که از بحره این روز تو را پرورانید پروردگار نشاید نشید برین کار اهریمنی که آسایش شارید و گردم زنی برتر را به ببر بیان سخت کن سر از خواب و اندیشه پرداخت کن چون این گفت رستم به پاسخ که راه دراز است من چون شوم می از این پادشاهی بدان، گفت سال دو راه هست، هر دو به رنج و بباد یکی این دو راه کاووس رفت بگر کوه و بالا برفتن دو هفت تراشیر و دیواید و تیرگی به ماند و چشمندران خیرگی تو کوتاخ گوزیم، شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنجه است هم بگذن پی رخش فررخ برو بسپری شب تیره تا برکشت تابناک ستایش کنم پیش یزدان پاک مگر باز بینم بر یاد تو همان تیر زن چنگ و کوپاگ تو وگر تیره روز تو دست دیو شود هم به فرمان کیهان خدیف توانت کسی از تو این باز داشت چونان چون بیاید به باید گذاشت نخواهد همیمات ای در کسی بخوانند اگرچه بماند بس کسی کو جهان را به نام بلند گزارد به نباشد نماشند بشند چون این گفت رستم به فرخ بدر من بست دارم به فرمان کمر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواه همجز از داد گرده است گیر جان پدای سپه کنم تلسم و دل جادوان بشکرم هران کس که زنده است از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارزنگ مانم نه بیو سپی نه سنجه نه کولاد قندی نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای، مگر دست ارزنگ پاس که چو سنگ نهاد به گردن برشک هنگ سر امض فولاد در زیر پای پیراخش خورده یک آهت سجا بدان خواستم دل‌گیر را در من واجر رستم به جای است و حکایت از شجاعتش میکند. پای در رکاب زین می‌گذارد. مادرش رودابه نیز برای پدرود کردنش آمده است. اینک پدر و مادر هر دو عشق می‌بزند. آیا بار دیگر او را خواهند؟ به بردت گرفتش براف آختیام بر برو آفرین خامزاد بیامد برقشندر آورد برمان روخش رنگ بر جا یکی جا بیامد رز آب روداب روی حنیزار بکیست دستان بر به پدرود کردنش رفتن از پیش که دانست کش باز بینن بیش دوسیه بزرگ می گوید روزگار به دینسان می گذارد. در جریان زندگی گذره هر روز از عمر ما جان به در است از بسا محبک ها و خطرها. زمان زمانه بر اینسان بگذرد پیش مرد بینا هنی بشمند همان روز کان بر تو بر برگذشت تند از بد گیتی آزاد کرش. هم از راه کوتاهی که پدرش نشان داده بود باید عبود کنند در این راه در رندگان و جادبان تشنگی و گرما انتظار او را میکشد او از هفت منزل خطرناک باید بگذرد برون آمدان پهتب از نیم روز همی را شادان رخ و دلفروس، دو روزه به یک روزه بگذاشتی شب تیره را روز پنداشتی بر اینسان سان همین رقش بپیت را به تاوند روز و شبان سیاه آری شب و روز رستم عصب میتازد تا سر انجام گرستگی برو چیره میشود دور خریش کار کرده کباب میکند و می خورد شب فرا رسیده است لگام و دهنه از رخش باز کرده خود در نیستانی از نیها و علب خواب بستر ساخته به خواب می قافل از آنکه این نیستان بیشه و کنام شیری در رنده است در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیاغ است یا نیتسود. رو پاس بگذشت در رندشیر به سوی کنام خدا بدلید بره نی یکی پیل کن خفته دید. به پیشش یکی شیر آشفته دید خست عصب را گفت باید شکست چو خواهم سوارم خداید بده دوی رقش رخشان بیامد دمان چا باتش بجوشید رخشان زمان دو دستندر آورد و زد بر سرش همان تیز دندان به پشتندرش همین زرش بر خاک تا پاره کرد ددی را به چاره بیچاره کرد بیدار شد رستم تیز چنگ جهان دید بر شیر تاریک و تنگ چون این گرز با رقش <تصفيق> ای حوشگار که گفتد که با شیر کن کارزا اگر کشت گشتی دو در چنگ اوی مر این گرز و این نغفر کینه جوی چگونه کشیدی به مازندران کمند و کماند تیر و گرز گران سرم گرز خواب خوش آگه شدی تو را رز با شیر کتن دلیر آن هنگام که رستم در خوابی سنگین فرو رفته بود شیری قوی پنجرا از پای درآورده است بدین سان خان اول منزل اول از دشواریها ها پشت سر گذاشته می شود خان دوم بیابان و خورشید و تشنگی است در هیچ سوی نشان از آب نیست رستم تا پای هلاک و مرگ پیش می رود دلیر جوان ناامید از زندگی به درگاه خدا نیایش کرده به او میگوید از من گذشته خداوندا به کیکاووس گرفتار در بند دیوان زینها رو امان بده ناگهان قرمی نیشی کوکی بر سر راه پنیدار نشمند پی رخش و گویا زبان سوارز گرما و از تشنگی شد بگاه یاده شد از اسب و جوبین به دست همی رفت شیدا به کردار منست همی جزد بر چار بردن رهی سوی آسمان کرد رویان گلی چون این گفت ای داور دادگر همی رنج و سختی تو آریم سخت اون که خوشنودی از رنج من به دانگیتی آگنده شد گنجم به همی تا مگر کردگار دهد شاه کابوس را زین هار همیرانیان را ز چنگال دیب رهانم به فرمان گیهان خدی. تن پیوارش چنان کفته شد که از تشنگی سست و آشفته شد بیفتاد رستم بران گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک به پیمود پیش سپه بد زمین از آن رفتن قرمش اندازه خواست به دل گفت آبش خوره این کجاست همانا همانا چه بخشایش کردگار راز آمد از در این روزگار شاهد شمشیر دست راست به نام جهاندار برپای خواست به شد برپی قرم تیغش به چنگ به دست دگر پال به رهبر یکی چشمه آب دید که قرم دلاخات آنجا بسید همتن سوی آسمان کرد چون این ای داور راست بود هران کس که از دادگر یک خدای به پیچت ندارد خرت را به جا به جایی که تنگ در آمد سخن خناهد بجز پاک یزدال مکر ها شده از چنگال مرگ و تشنگی و آفت آف در آن چشمه سر و خود برقش آشسته دور خریش کار و کباب کرده میخورد و آنگاه آهنگ خواب می کند. اما پیش از خواب به میگوید مبادا بار دیگر هنگامی که در خواب هستم با دشمنی بجنگی. اگر با شیر یا دیبی روبرو شدی مرا این بار از خواب بیدار کن آنگاه از زین و برگ اسبش بستر خوابی درست کرده به خواب می رفت. رمتن به رخش سراینده گفت با کس مکوش و مشو نیست جفت اگر دشمن آید سوی من به تو با دیو و شیران مشو جنگ جو به خفت و براسود و, برا و نکشاد لب چمان و چران رخش تا نیمشم رستم به خواب میرود و هم در این هنگام است که سبومین دشوار این راه خود خطر از راه خان سپم، منزل سفرم، جادو اجده دمان به قصد نابود کردن رقش دارد رقش رستم را به شتاب از خواب بیدار می کن. اما هر بار که او را بیدار می کند اجدها به کمک سفر ناپدید می شود پانجا پا که رستم از رخش خشگین شده به او میگوید اگر بار دیگر مرا بیهود از خواب بیدار کنی خواهم کشت و پیاده به مازندران خواهم رفت. ز دشتندر درآمد ایکی عشقها که از او پیل هرگز نبودی به ها جا جایه بودش آرامگا ز بیمش برو دیر را سوی رخش رخشنده منها که دبان اسب شد سوی دهیم جو. همان چو از خواب بیدار شد سر پرخرت پرس پیکاو شد به گرد بیابان یکی بنگری غریب شد آن اشتها دوشم ناپدید ابا راخبر خیز به کار کرد بدون کم سر خفته بیدار دگر باره چون شد به خواب ز تاریکیان اجتاح شد برون به واقیدن رستم تکاور همین چند خاک و همین کرد بخش دگرباره بیدار شد خود من برا شفت و رخسارگان کرد زر بیابان همه سر به سر بنده به جز خیرگی شب بدیده ندید به دان نهبان رخش شیار گفت قاری شب به خواهی سرم راه همین بازداریز خواب به بیداری من گرفتی شتاب؟ گر این بار سازی، چون راست خیز تیه تو ببرم به شمشیر تیز یاده شوم سوگ مازندران تشم خشت و گوپال و گرزگیران رستم بار دیگر بخواب میدن ها بار دیگری و بیدار رخش چاره را در بیدار کردن رستم میبینن اما این بار خدا برقی در آسمان پرید می که همه جا روشن شده رستم اجدهارا می بید چنان صاف روشن جهان آفرید که پنهان نکرد اجدهارا زمین بدان تیرگی رستم او را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید بقرید برسان سال عبر بهار زمین کرد بر آتش استم به جنگ اشتها ها رخش میخبان که سبار دلیر خود را در خطر می بیند. به کمک او رفته با دندانهایش که اتفای اجده را کنده چرم و پوست تنش را می بلند. و سوغ خانه اجتهادی رخش کز آن خان برابری با خار بخش به مانی خوشندر آمد شگی بکند اجدهارا به دندان بکید به دری چرمش به دامن کشید بروخته شد خاطر واق دلش بسات کی خواند از کنسرش چون رود زهر از زمین شد به زیر تنش ناپدید یکی چشمه خون رسود او آمین رستم از خان و منزل سبا جان بدم درست. درستم و رخش بار دیگر آن راه شگفت انگیز به راه میفتند در آن بیابان خول و حراس و خلبت به درختی و چشمی و ساگ ساگی مدستند شگفت ها که در کنار چشمه دونشان جامی لبالب از شراب گذاشته شده و مرق بریان و نان و نمک تیده شده است این صفره زنی جادوگر است با رسیدن رستم ناپلید شده است رستم با شگفتی سپاس از خداوند می و جام نبید و شراب را در میکشد و مرق بریان را میخورد و چون سرش از باد گرن شد اندوه دوری زادگاه و کسانی بر دلش با جون بر ماجرای به سرنوشت قرماجرای می تمبور سازی را که در آن صفره شگفت نهاده شده به دست میگیرد و سیم ساز را به صدا در آورد را و آواز میخواه آواره و بدنشان دو سمه است از روز شادیش وحر کم است همه جای جنگ است میداره بیابان کوه است بستان همه رازم با شیر و با اجده ها و بیابان نیاپد راه. میو و جام و بویا گل و می گسار نکرده است بخشش برا کردگار همیشه به جنگ نهنگنده راست گر با پلنگان به چنگنده آواز رستم به گوش پیر زن جاگی می رسد پس به افسون خود را به شکل زن عشبگری گری درآورده به کنار رستم لاکن رستم شادمان جام بادهی به زن می دهد و خداوند را از آن همه شادی ناخواسته اما از راه رسیده سپاس می دهد. اما زن جادو که تاب شنیدن نام خدای مهر و یگانه را ندارد چهرش زشت و دگرگونه می شود رستم پی میبرد برد که او افریتی جادوگر است که آواز داد از خداوند مهر تر ترگشت جادو به چهر روانش گمان نیایش نداشت زبانش توان ستایش نداشت سیه گشت چون نام یزدان شنید تهمتن سبک چون بدون بنگری بیانداخت از از خم به کمان سر جادوی آور ناگه به بر به و گفتش چه چیزی بدون به دانگونکت هست به مایرون یکی جند پیری شدن در کمان. پر از رنگ و نیرنگ و بند و گرد میانش به خنجر بدون این کرد دل جادوان زو پر از بین کرد پس از کشتن زن جادو به سوی پنجمین مرحلی سفر پرخطر خود به سوی پنجمین منزل و خان به راه میفتن از میان تاریکی ها میگذنن چنان تاریکی دهشتناکی که ناگزیر دست از هدایت رخش کشیده رفتن را به او میسپارن و رخش او را به دلخواه در تاریکی ها میبرن تا آنکه، ناگهان روشنایی و انگاه دشتی چون بهشت سبز و خرم پدیدار می شود هوا قرق در شبنم است چون که پوشش اسب و سوار می کند و خود از بسیاری خستگی به خواب می رون. دشتبان و پاستار آن دشت از آنجا عبور کرده اسب رستم را سرگرم چریدن و لگد کوب کشت و کارش می بیند پس گیم با چوب دستش زرمه سختی به پاگ رستم جوان میزند چو در سبزدی دست را دشتوان گشاد زبان سوی او شد دوان سوی رستم و رقش بنهاد رود. یکی چوب زد گرم بر پاگ اون تو از خواب بیدار شد پیلتن دو دشتوان گفت ای احرمن چرا اسب در خیل بگزاشتی بر رنج نابرده برداشتی کار او تیز شد مرد گوش به و گرفتش یکا یک دو گوش بی افشارد و برچند هر دو زبان نگفت از بد و نیک با او سخن گوش رستم گوشهای کند شده دشتبان را کپ دستش میگذارد و با او هیچ سخنی نمیگوید دشتبان بخت برگشته نالان و زاران به نصف دلاوری که فرمان روای آن دشت خواب و سرزمین است رفته از رستم شکوه میکند نام آن دلاور اولاد است سبک دشتوان گوش خواب برگرفت قریبان و زو ماندن در شگفت به مرز اولاد بود پهلوان یکی نامجویی دلیر و جوان شدیم دشتوان پیش او با خروش گرفته پر از خون به دستش دو گوش به دو گفت بردی شدیویسیاه پلندین جوشن از آهن کلاه همه دشت سرتااف سرحمی من است اگر شدهها خفته در جوشاند است رفتم چه اسبش برانم زکششت مرا خود به آب و به نهش مرادی مرای برجست و یااف نگفت و گوشم هم و همان جا اه سرگرم شکار و سرکشید به دشتهای منطقهٔ فرمانروایی خود است پس از شنیدن شكوهٔ دشتبان با سپاهیان همراهش به سراق رستم میرود و چون از رستم نام او را میپرسد به او میگوید نام من عبر است واگر عبر با شیر بجنگد نیزه و بدو گفت، اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو چیست؟ نبایی است کردن بر این ره گذر، سوی نرشگیران پرخاش خرد چون این گفت، رستم نام منب، اگر آب کوشد به جنگ هزب، همه نیزه و تیغ بار آورد سران را سران در کنار آورد به گر نام من بگذرد دم جان و خون دلت بخصورد نیامت به گوشت به هیچنجمن کمند و کمانه گوه پیرتن تیغ تیز از نیام بر و سپاهیان اولاد را چنان به زخم شمشیر میزند که بسیاری کشته و باقیمانده می گرسند رستم کمندن داخته اولاد را اسیر می کنند. آنگاه خود بر اسب نشیند او را به جلو انداخل به راه بودند رهنگ بلا برکشید از نیام بیاویشت از خمزین چرخ خام به یک زخز و دو سرفگند خار به یک رخ بدان تیغ جوشان گذار در و در شد پرزگرد سوار حراکنده گشتند در کوه و قار همین گشت روستم چشیر دو جمع. کمندی به بازندرون شهست هم به اولاد چون رخش نخلی شد به کردار شب روز کاری شد یه افگند رستم کمند دراز به خم اندر آمد سر سر فراح. از اسب اندر آورد و دستش ببست به پیش اندر افگندشو بر بشست رستمانگاه به خود اولاد میگوید. اگر هرچه بپرسم راست بگویی و راه رسیدن به دیو سپید و دیگر دیوان چون کلاد قندی و بید و راه رسیدن به زندان کیکابوس را به من بنمایی از ریختن خونت میگذارم و پادشاهی مازندران را از شاه مازندران گرفته به تو خواهم بخشید اگر راست گویی سخان ز کجری نسر یابم از تو نبون نمایی مرا راه دیو سپید همان راه کولاد قندی و بی به جایی که بسته است کابوس کی کسی این بدی را بگندند پی نمایی یا پیدا کنی راستی نیاری به کاران کاستی من آن پادشاهی به گرز گران بگردانم از شاه مازندران تو باشی بر این بوم و بر چخ یار نیاری به کار دو گفت اولاد دل راز خشم به پرداز و یک بار چشم تن من مپرداز خیرز جان بیاویز من هرچه خواهی نشان تو را خانه و جای دیو سپید نمایم همان هرچه داری امید به جایی که بسته است کاووز شاه نمایم تو را یک به یک شهر را اولاد انگاه برستم میگوید از اینجا تا دامنه کوه فروز تا زندان کیکاوس صد فرسنگ و از آنجا تا اقامتگاه شاه مازندران هم یک صد فرسنگ فاصله است میان این دو صد جایگاه دیو سفید در قاری و چاه ساری شگفت در میان دو کوه است راهی و کاری بس دشوار دهشتهای حراساور و ششت هزار سپاهی و یک هزار و دویست پیل جنگی شاه مازندران اولاد به رستم میگوید تو بدون سپاه توانای چیرگی بر این دشواری ها را ندارد نتایی تو تمها وگر زاهنی بسایه سوحان احریم بخندید رستم به گفتها رو بود بدو گفت اگر با منی راه جو که از این یک تن پیلتن تن چه آید بران نام دارن جمن به نیروی یزدان پیروزگر به بخت و به شمشیر تیز و هنر چبینند پای و پر و یال من به جنگان درون زخم گوپال من به در و پوست از نهی انان را ندانند باز از رکی به دانسو کجا هست کابوس کی مرا راه به مایو بردار دهید اولاد را دست بسته به جلو انداخته شب و روز می تا سرانجام به کوه فروز می رسند همان جایگاهی که که کاووس هنگام رسیدن به مازندران لشگرگاه خیش را برپا کرده بود آری رستم به خان ششم به ششمین منزل دشواری خار رسیده است نیاسود تیر شب و پاک روز همیران تا پیش کوه سپروز به دانجا که کاووس لشکر کشید زیدیوان جادو به دوبت رسید هنگام است. رستم از فراز بلندی دشت را می نگرد. هزاران شعله آتش اینجا و آنجا پراکنده است رستم از اولاد میپرسد این شعله ها و روکنایه ها چیست و اولاد به رستم میگوید دو از دیوان تمام شب بیرون شهر پاسداری می کند پس رستم خسته از راه می خوابند. سرانجام خورشید طلوع می کنم. رستم اولاد را به درختی با کمان میبندد و خود به راه می به خفتان زمان رستم جنگ جون چه خورشید تابنده بنمود روی بپیچید اولاد را بر درخت به خم کمندش فرو است سخت به زینن برفتند گرز نیا همی یک دل پر از کینیا. یکی مقفر خسروی بر سرش، خویالود ببر بیان در برش و ارزنگ سالار بنهاد روی، تو آمد بر لشکر نام جو یکی نعرزد در میان گروه، تو گفتی بدر ریب در و کو برون آمد از خیمه ارزنگ دی تو آمد به گوشش خروش و قریب. به دیدش بدیدش برنگیز به بدو تاخ مانند آزرگوشه است از سر و گوش بگرفت و یالش دلیل سر از تن بکندش بکردارشی پر از خون سر دیل کند زتن بینداخت زانسو چه بودن جمن چو دیوان بدیدن این حال او. به دقیقشان دلز چنگال اون نکردن یاد از برابوم و روز به بر پسر بر همین راه جوزد برای شمشیر پرداخت بپرداخت یک بحر زانن پس از کار مار کردن دیوان پاسدار و کشتن ارزنگ فرمانده آنان به نزد اولاد بازگشته او را از درختی که به دان بسته بود باز کرده به جلو انداخت تا به شخلی که کیکاووس در آن زندانی است بروند اولاد پیشا پیش رستن می و راه رسیدن به زندان را به او نشان می دهد شگفتا انگامی که به زندانی که کیکاووس در آن دربنده است می رخت چنان شیحه سر میدهد دهد که کیکاووس و همراهان در درون زندان شنیده شادمان به یکدیگر میگویند این صدای رخش رستم است چه آمد به شهرن درون تاج خروشی برآورد چون رعد رخش به ایرانیان گفت پس شخدار بر ما سر آمد بد روز کار خروشیدن رخشم آمد به گوش روان و دلم تازه شد زین خروش بیامد هم در زمان هیچ او یل دا شب روز پخاش ج چون نبی که کااووس شد دی همه نام دارم شدن دن جمن گرفتش در آغوش، کااووز شاه ززالش بپرسید و از رنج راه آنگاه که کااووس برستم میگوید تو باید هر زودتر خود را به کام و جاگاه. به سفید برسان. زیرا اگر او خبر کشته شدن ارزنگ به دست تو را بشنود همه رنج تو بربار می رود من کوه شده است و پزشکان گفتن تنها راه درمان ناوی نائیم دیختنثقت خون دیب سپید در تشمان است. ک کاابوس بهرستم میگوید پزشکان به درمانش کردن دومی به خون در و مغز به سپید. چون این گفت فرزانه مرد پزشک که چون خون او را به سان سرش چکانیس قطره به چشمندرون شود تیرگی پاک با خون برون جب پیلتن راز را ساز کرد و از آن جایه رفتن آغاز کرد اینک رستن به سوی خان و منزل هفتم به سوی ترین مرحله سفر خود می جنگ با به سپی دوستم از اولاد میپرسد هرچه پرسیدم راست گفتی اینک با من بگو راز پیروزی بر نیم سپید چیست اولاد به او میگوید بدان که دیوان در نیم روز به خواب میروند جستنی چند از آنان که پاس دارند. پس مناسبترین زمان حمله و جنگ با آنها نیم روز است و از آنجا یه تنگ بست کمر بیامد کینه و جنگ سر. چون رخشندر آمد بدان هفت کوه، بدان نردیوان گشت گروه، به نزدیکی قار بیبون رسید، به گردندرش لشکر دی. اولاد گفت، آنچه پرسیدمت همه بر راه راستی دیدمت. کنون چون گه کینا آمد پراست برا راه را مای و بکشای راست. بدو گفت اولاد، چون آفتاب شود گرم در آگد میخواد. بر ایشان تو پیروزگردی به جنگ تو را یک زمان چرد باید درنگ س دیوان نوینی نشسته یکی جز از جادوان پاسبان هم دکی بدان گفت تو پیروزگردی مگر اگر باشدت یا پیروزگرد رستم پند اولاق را شنیده درنگ کنم سرانجام خورشید بر بلندای آسمان قرار روز به نیمه رسید هوا هرچه بیشتر گرم شد دیوان به خواب رفتن آنگاه رستم چون شبه مرد بر آنان فرود آمد فراوان از ایشان بکشت و پاسداران قار و چاه دیو سفید را از پای درآورده به درون قار پای گذاشت تاریكی محز لختی ایستاد تا چشمانش به تاریکی خوب کنی. و چون چشمش به تاریکی خوچه ناگاه پیش رویش حیولایی قرقه در پولاد و آهندید چنان تنومند که اندامش همه قار را پر کرده است رنگ رویش سیاه و مویش یک سر سپید است و آنجا گه پیش پیش دیب سپید بیامد دلی پرس بیم و امید به کردار دوزخ یکی چاه دید تن دیو از آن تیرگی ناپدید زمانی همی بود در چنگ تیر نبود جای دیدار و جای گریب چو دیده بمالید و مجگان بشوز بس آن چاه تاریک لختی به به تاریک در یکی کوه دید سراسر شده چاه از او ناپدید به رنگ شبه روی چون برف موی جهان پرز پخناب و بالای سوی رستم آمد چه کوحی سیا از آهنش ساعد و از آهن کلا از او شد دل پیلتن پرنهی به ترسی کامد به تنگی نشی بر شفته برسان پیرشیان یکی تیقه تیزش بزد مرنیان. نیروی رستمز بالای او بینداخت یک ران و یک پای او بریده براویخت با او به هم چوپیل پیل سرفراز و شیر دوشم همی پوست چند این از آن آن از این همه گل شد از خون سراسر زمین آن که رستمز اختهای کشندهی به دیو سپید زده است او با تمام نیرو با او جد رستم با خود میاندیشد اگر از این نبرد جان بدر برم برای همیشه زنده خواهم ماند و به سپید در بهگوههٔ نبرد با رستم با خود میاندیشد اگر از دست این اجدها رها شوم برای همیشه از مازندران خواهم بود به دل گفت رستم جرامروز جان بماند به من زنده جد حایی دون به دلگو، فی به سفید، استانشی <تصفح> شدم نامید. گری دوم جسندیش یا، یا بزد دست و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افکان سیر خروب خنجر دلش بردارید جگرش از تنه تیره بیرون کشید همه کار یک سر تنه کشته بود جهان همچو دریای خون کشته بود این روز از نبرد با دیو سفید بازگشته است او جگر و مقز دیو سفید را با خود آورده است داروی نابینایی که کاووس. اولاد به رستم یاد آوری می کند که به او وعده پادشاهی مازندران را داده است رستم به اولاد می نخست باید چاه مازندران و باقی دیوان را از پای در آورم و اگر چنین کردم از پیمان با تو نخواهم گذشت مگر که مرده باشم و خات را سپرده باشم و سیدان نزد نزده کاهوس کی یا به گیتی افروز فرخوند پی چونین گفت ای شاه به مرگ بدندیش رامش پذیر در ایدم کمرگاه دیو ندارد بدون شاه از این پس آمید زپه پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمانده هر شاه پیروزگر بر او آفرین کرد خونده شاه می تو مبادا آنگین و کلا بران مان چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یا انگاه های خون جگر بیو سپید را در چشم می میچکانند و شاه ایران بینایش را باز می به <سلام> چشمش چون در کشیدند خون شدان تیرگی از دو دیدش برون نهادند زیرندرش تخت آد بیاویختند بیختند از بر آد، آد نشست از بر تخت مازندران رستم و نام بر پهلوان. چه توس و فری و گودرز و گی روحام و گرگین و بهرامه بر این گونه یک هفته بار روی و می همین رامش آراز کاروزه که آره بیو سفید به دست رستم دلیر کشته شده است که کاووس از زندان و نابینایی چشم رها گشته است. اما هنوز شاه دیوان و جادوان مازندران و 600 هزار مرد جنگی او در دور دست مازندران انتظار رودررویی با شاه ایران و رستم دلیر و سپاهیان ایران را می کشند.